رحیم الحمدلله و صلات و سلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم درس امروز ما شما اقسام دلایل وجود خداوند مطال جل جل نهوز که صفحه پینجه و پنج کتاب تانست مثل که در درس های گذشته خواندیم اگر یک انسان مسلمان یک انسان مؤمن فکر بکنه در هر بخش زندگی از او خداوند متعال جل جل و هزاران دلیل برش بیان کرده و خلق کرده که انسان هر چیز رو میبینه به طرف هر موجود سعیل میکنه او در حقیقت ثابت میکنه که مثلا خدای وجود داره از جمله دلایل ما شما مثلا دلایل قرآنی داریم که قرآن از این شان چی رو بر ما پیش میکنه تا که ما با وجود خدای عزوجل ایمان بریم دلایل فطری داریم دلایل مادی داریم دلایل عقلی داریم دلایل علمی داریم و نظریاتی است که مثلا علما و دانشمندان گفتند ما شما این دلایل را میخوانیم اگر شما الحمدلله مسلمان هستیم ولی با وجودی هم که هرقدر انسان دلیل داشته باشه و بفه نسبت به ایمان تقلیدی که انسان کورکورانه پیش میره و به دلیل میره اصلا ایمان بسیار ارزش را پیش خدا که او به اساس عقل و اساس فهم و روی قناعت شخصی خود انسان باشه و حتی در وقتی که شما برابر میشین جوانای مسلمان هستین امروز جهان یک کریر که ما شما میز خود میمانیم مثل یک کرتوب کوچکی شده که انسان میتونه از یک سر دنیا به طرف دیگه دنیا و بسیار سادگی عرکت بکنه و میتونه که زود از یک منطقه خود به منطقه دیگه برسونه و همشان میتونه که زود اتصال بگیره یعنی وسایل بسیار زیاد است امکانات بسیار زیاد است وظیفه یک مسلمان دایی شرایط بیشتر است شما منیس های مسلمان میتواید که دیگرارا را به طرف دین و دعوت بکنین به طرف اسلام دعوت بکنین و این دلایل را که شما در سنفیت میگیرین میتواید از این دلایل برای دادن غیر مسلمان هایی که اونا مثلا بسیارشان غافل هستن اونا رو ما شما باید از خواب غفلت بیدار بکنیم و بسیارشان درباره وجود خداوند فکر نکرده ما شما برشان دلیل بتیم حتما ان که اگر انسان سعی و تلاش بکنه نتیجه مثبت می داشته باشه از این جمله اول دلایل قرآنی را می خانیم. که قرآن از مشان چی دلایل بر ما به وجود خداوند متعال جل جلاله جل بیان میکنه خود قرآن از مشان کلام خداوند است در شک نداریم و القران از برای انسان ها نازل شده بنا ما قرآن وقتی که می قرآن قران دلایل مطابق استعداد ما مطابق توانایی ما مطابق عقل ما بنا دلایل قرآن همیشه معقول بودن و همیشه اگر انسان عاقل که درباره ازو فکر کرده و خواسته بفهمه حتما فامیدم. قرآن از میشون مثلا یک بخش دلایلش دلایل حسی است ما شما گفته بودیم در سابقه که یکی از نعمت های خداوند متعال جل جلوه و حس انسان است. بنام در قرآن از این مشان دلائل حسی زیاد وجود داره. مثلا از نگاه حس غالبا علماء میگن که وقتی که کلمه نظر نظر بر انسان گفته میشه در قرآن این غالبا نظر چشم انسان است. مثلا آیه شریف چی میگه؟ میگه که شما به طرف آسمان ها و زمین فکر بکنید. افالم یانظرو ال السماء میگه چرا این مردم نظر نمیکنن؟ به طرف آسمان فوقهم که بالایشان هست کیفه بنایناها؟ چه خصم ما ای آسمان رو بنا کردیم؟ و زینا و ما چه خصم ایره مزین ساختیم؟ با سیاره ها، با ستاره ها، با چیزهایی که در آسمان هستن و ما لهم این فروچ و هیچ شگاف دری آسمان نیست که ما فوق آسمان چیزهایی که است. خالی باشه منظور از شکافش یعنی که سوراخ باشه و از او چیز پایان بریزه خب ایناله اینجا وقتی که ما شما ایایت قرآن دقیقا مطالع میکنیم شاید یک انسانی که در زمانهای قدیم زندگی میکرد به طرف آسمان شاید نظر میکرد از جایی که خودش استاد است ولی امروز وسایل بسیار ای است که انسان وقتی که به طرف فضا میرن و سیاره ها رو میبینن نظامی که در اونجا هستن تلسکوپ از از این استفاده میکنن بالاخره میبینه که خدای عزوجل با چه عظمتی آنوز خلق کرده و آنوز انسان ها تنها ازمی سیارات و کهکشان هایی که است آنوز آخرین کشف نکردن کشفیات شده لكن نتونستن که تمام علوم مادیر کلشن کلش تحت تاثیر خود برن و کل از کشف بکنن بران انسان ها هنوز هم در مرحله کشف است و روز به روز چیزهای جدیدی را کشف میکنند. خداوند متعال میگه که شما من ایس انسان های با دانش و با عقل چرا نظر نمیکنیم به طرف آسمان ها؟ شما ببینید آسمان ها را که چه قسم خداوند ایر خلق کرده و چه قسم را مزین ساخته. شما اگر مثلا یک جای جشن میباشن ببینید که یک منطقه هست بسیار چراغای زیبای اونجا منظم در حرکت هستند، چراغا روشن میشن، گل میشن، حرکت میکنن. انسان میگه ببین چه خوب زیبایی خلق شده و کسایی که دهو کار کرده انجینیرایی که دهو کار کرده مهندسینی که دهو کار کردن و اما علم و دانش ازنا انسان تعجب میکنه میگه شما به طرف آسمان سال کن ببینن که خدای عزوجل چه قسم ایره ببینید چه ما راه خلق کردیم کی دعا میکنه که امی آسمان ما خلق کردیم هیچ کسی دعا نمیکنه غیر از اینکه ذات خدای عزوجل در قران عجمشان میگه که ولی بله مخالق هستم تصادف خونه میتونه باشه وقتی که تصادف نیست حتما اینو که کس ساخته کسی رو خلق کرده پس خداوند متعال میگه شما ببینید که چه قسم مایی رو خلق کردیم اگر یک انسان عقل، به طرف یک تلسکوپ بشینه دهعقیم تلسکوپ بشینه و به طرف سیاره ها ببینه و نظم از این ها رو ببینه خود به خود برازی دلیل پیدا میشه که خالق وجود داره که همه ها رو ترتیب و تنظیم کرده آیات زیاد است در در قرآن عظیم شان که وقت ما و شما بخونیم به طرف زمین میگه والارد مددناها والقینا فیها رواسی وبتنا فیها کل زوجیم به بهیج زمین را گستریدیم و در آن لانگر یعنی, یعنی کوه کو ها را فرو افگندیم و در آن از هر گونه جفت دلنگز رویانیدیم میگه شما به طرف زمین سال کنین ببینین که در بین زمین خداوند متعال جل جلاله جل چه قسم زمین خلق کردند زمین به شکل کروی است بله وقتی مد داده، مد که مدد و مددناها شما ببینید که هرقدر انسان حرکت میکنه عموما رفته میره میره میره پس به منقطه‌ای من که حرکت کردی میرسی بران از چیزی که انسان حرکت میکنه پس به منقطه‌ای که خود شخص زمین چه می خود به خودی بر انسان میرسانه که زمین به شکل کروی هست ولی ما انسان ها اینمی کروی بودن زمین به زندگی نرمال خود احساس نمیکنیم ما فکر میکنیم که هموار است خداوند مطال با که زمین کورابی هست لکن خدای از زوااج ایره و شکل خلق کرده که ما با شما احساس نکنیم زمین عرارک میکنه ولی ما شما احساس نمیکنیم. اگر ما شما احساس می کردیم با درس خواند نمیتونستیم شما یک در روز زگ متر بریم وقتی که متر عرکت میکنه آدم دلش بد میشه وضعیتش که نورمال می اما زمین عرات میکنه لکن قدرت خدای زواجل هست ما شما احساس نمیکنیم. آرام مثل آرام چرا؟ این قدرت خداوند است که اما او را عرکت ولی ما و شما احساس نمیکنیم کوروی شکل است ولی ما و شما فکر میکنیم که اما تو هموار است برای ما و شما مثل انوار ساخته که ما بتونیم از این نورمال استفاده بکنیم یعنی شما میگه در هر قسمت زمین اگر شما فکر بکنین زامد بکشین در هر کدامش دلایلی است به قدرت خدای عزوجل و نزلنا من السماء ما مبارکا درایت در دیگه میگه ما نازل کردیم از آسمان آب مبارک رفت فأنبتنا فا به جنات وحب الحسید دیگه میگم ما از این باغ ها و دانه های بسیار عجیب و غریبی دی رویان دید. شما ببینید زمین زیباست ولی اگر آب از آسمان نبیاید زیبایی زمین از بین میره. خشک میشه، بی‌حاصل میشه. شاید 1000 جریب زمین داشته باشی لکن دستی گندم گرفتن نتونید. اما وقتی که خداوند متعال میگه که ما آب از آسمان ها نازل میکنیم بر روی زمین، به خاطر چی؟ به خاطر از زی وقتی که نبات مختلف بر زندگی انسان اینمی کلش کاری کی هست شما دقیقل امیره ببینید. تا امروز مثلا انسان نمیتونه که در منطقه که خوش برن اونجا بر از اونا ببارانن. اما خدای عزوجل است که 24 ساعت ما شما میبینیم که انواع مختلف آب و انواع مختلف نیمات را از آسمان و شکل برف و شکل باران نازل میکنه و از زمین آب‌های مختلف از چشمه ها از وادی‌ها شاید بالاخره میتونه انسان به شکل نرمال امی سیستم میگه اگه شما سعی کنین به هر کدام از انسان توجه بکنن بفهمم که ذات است که خدای عزوجل که همه از زیر خلق کرده و به شکل بر نفس انسان گذاشته بعضی آیات قرآنی است که عقل انسان را مخاطب میکنه اونجا که ما نظر کردیم به طرف هر پدیده‌ای که در اونجا بود به طرف هر چیزی که نظر کردیم دیدیم که در هر چیز به طرف آسمان و طرف زمین در کلش آثار قدرت خدای هست و جلس. هر کس مطابق مسلک خود شما مثلا اگر به طرف زمین به طرف هر چیز سعیل کنین انسان میفهمه که این نظم و این سیستم که در زمین هست کل از این دلیل هست ای که داره که اینا را ترتیب و تنظیم کردن و اینا را خلق کردن خداوند مطال جل جاله در خلقت خود انسان انسان دعوت میکنه که عقلت کار پرتو ببی که در وجود خود فکر بکو. مثلا مراحل خلقت تان فکر بکنین زنده ساختن میروند، تان فکر بکنین خلقت عزواجه که جفت هایی که خلق شدن، خواب بیداری تان فکر بکنین روز قروزی تان. فکر بکن ده هر کدام از این آیات قرآنی است که برای انسان درس میده که شما ببینین که خداوند که اول میگه هو الذی خلقکم من تراب. اول خداوند مطال جل جلاله میگه که انسان از چی پیدا کردیم از خاک پیدا کردیم ثم میگه باز باد ازی خب نوکسین انسان از خاک پیدا شد که آدم علی سلام است ولی ثم من نطفه باز به خاطر ازی که سلسله زندگی دوام پیدا بکنه اینها را باز مثلا از نطفه پدر بالاخره آیسای ایسا, ایسا, ایسا, ایسا, آیسا تا که ما و شما پیدا بالاخره اینسان از نطفه پیدا شد. ثم من علاقهن. باز این از علاقه هست و این را علمای اه اه ساینس امروزی هر کدام از اینها را فلم برداری کردن، تصاویر بسیار دقیق دقیق داره که ما شما باز ان شاء الله در صنف 4 که اعجاز علمی قران در هر آیت نشان میده که شما را مثلا ما با اشکال شما رو خلق کردیم باز مثلا به شکل یک طفل باز به صورت نوجوان شدین شما باز پیر شدین همین مراحل زندگیتان رو شما یک یک فکر بکنین و وقتی که دربارهی هر کدام از این انسان فکر میکنن تعجب میکنه که چیزاتی است که مرا به شکل خلق کرده که وجود مرا خلق کرده و زندگی مرا خلق کرده بران هر کدام این وقتی که متوجه میشه میخواد که اوهو خدا ای عجب ذات است که انسان با چی دقت خلق کرده پس انسانی که او است و میفهمه و با دانش است او باز از یقل در باره هر چیز وقتی که خداوند میه که در وجود خود فکر بکنین در ساختمان فیزیکی وجود خود فکر بکنین ای وقتی که در ساختمان فیزیکی وجود خود فکر میکنه می که بر سطحا دلیل می باشه که این دلایل بر انسان نشان میتا که خدای هست مرخال خلق کرده شما بین این سعی کنین این سنفیتانه وقتی که این سنفیتانه خداوند گفت شما به نفسهای خود نظر بکنیم به آناتومی وجود خودتان نظر بکنیم ما میخواییم مثلا به طرف یک انسان نظر بکنیم که منیست یک انسان عاقل. یکی از انسان هاییست مثلا هیوان صفت که اونا بسیاری وقتها به طرف هر چیز به شکل ظاهریش نظر میکنه اما یک انسان با ایمان، انسانی که خداوند عقل برش داده، او به طرف یک مخلوق وقتی که میکنه خداوند مرا گفته که شما به طرف خود سالگردین، به طرف ها ببینید که در وجود انسان چه حکمت‌هایی است. اول وقتی که انسان سالمه میکنه مثلا سلفیتان هم نمبینیم که چرا خداوند متعال جل جلاله جل جل قلم تن برش. مثلا خداوند متعال جل جلاله جل جل چرا برای ابروها یک قسم بالای چشم خلق کرده؟ چرا ابروهاش بالای چشمایش هست؟ ادیخل انسان پیش خود سوال بکنه وقتی انسان خوب فکر میکنه ولی وقتی که من خانه میساختم در وقتی خانه ساختنم خاطر از اینکه آب کلکینی ما را خراب نکنه دیوارا را خراب نکنه همیشه به سر بام آدم یک ناوگک جور میکنه که ناوه آب پایین میره پس این ابروها ها در حقیقت وقتی که انسان عرق میکنه و چشم یک بسیار ضعیف است خداوند مطال جل جلوه ناوههای را خلق کرده که اگر عرق از این میایه ای به طرف راست و به طرف چپ میره و داخل چشم پایین نمیشه ای بدون حکمت است نه به خدا چون خدای عزوجل می که عالم است که اینم انسان ها اگر... ما وقتا فکر میکردم که ولی اگه چشم انسان در این قسمت سر انسان باشه بسیار خوب دیده میتونه یک چشم اینجا باشه یک چشم میگه باشه از طرف پیدا میتونه منو طرفه مو طرفه مو, طرف مو, طرف مو طرف اما بسیاری سری وقتها میشه که چشمی طرف یه چقوری پیدا شدند. انسان بسیاری وقتا وقتها تکر میکنه وقتی که تکر میکنه در دیوال سرش میخوره وقتی که سرج خورد میترقه اما چشمش سالم هست. حتی همین چشمه که در یک چخوری هست این همچی است حکمتی از خدای عز و جل که چشمه را به شکل خلق کرده باز وقتی که پایین میم خط پلکای چشم برای چی است میشه اگر آن قطره, قطره از یک قطره از نه نه نه عرق عرق چیزی هایید که از جسم انسان مسانمه با هزاران ها میکروب و با هزارا چیز وقتی که یا گت میشن وقتی که در چشم برا چشم زود از بین میبرا و چشم انسان چیزی بسیار مهم است که در زندگی ازی باید 24 سات افت شد پس وقتی که اگر کدام قطره از ابرو تیر شد از این قسمت ها باز پلکای چشم است که این قطرات نمیگذاره که در داخل چشم بره. و این انسان وقتی که از نگاه تی وی پیش یک دکتر میشن که ای پلک ها چی داره شاید یک کتابو مکمل براتون نوشته بکنه و بگه که مثلا چیز لازمه باز چرا در بین چشم انسان آب شور است چرا آب شور است مثلا وقتی که ببینین در دهان انسان آب شیرین است اما در چشم آب شور است چرا این آب شور در بین چشم یک انسان خلق شده به خاطر که اینکه بسیاری وقتها انسان وقتی که گوشت اخاق میکنه وقتی شما گوشت اخاق میکنین دقاق کردن گوشت نمک, میپرتین، نمک میپرتین؟ نمک بیفردین. چرا نمک بیفردین؟ به خاطر این ای که خراب نشه، گنده نشه. پس چرا در بین چشمای یک انسان آب شور است؟ چرا؟ به خاطر این ای که وقتی که چشمای انسان بسیار نازک است خداوند متعال جل جلو با حکمت خود در هر در 24 سات چشمه آب شوری را در داخل چشم خلق کرده. به اینمی آبشود 24 در بین چشمای تو جدیان داره اگر یک ساعت هم خوش و چشم انسان از بین میره لکی این به میشه شکلا متو دوامدار در چشم انسان آبش آب شور هست پس این چشمی آب شور خود... با کدام حکمت خود چرا خدای از ذوال جل در چشم آب شور خلق کردن پس ذاتت بالای ما بسیار مهربان رحمان رحیم است می که چشم من خواسته است که چشم من چی نشه از بین نره بس به این شکل، اما وقتی که باز به با گوش ها میریم، باز در گوش وقتی سال کنیم، اینجا مواد زهرالودی است که اگر یک خزنده انسان استراحت باشه بخواهی در گوش انسان داخل شود و به خدرت خدای عزبا جل او کدام داخل گوش که داخل میشه میگه نه نه نه اینجا جای زندگی نیست، اینجا کلش زهر است، پس براین، پس گوش انسان سالم میماند. اگر در گوش انسان آب، مواد شیرین می بود فورا اونهامج جا به جای میشدن به این شکل چیز میکردن شما ببینن موی انسان نمو میکنه ولی ابروهای انسان نمو نمیکنه شاید بسیار 40 سال بعد یا 50 سال بعد یا 60 سال بعد اگونیش سفیده که من کبروش کلون کلان است اما دیگه ابروش پس اینجوری تو همین فابریکی که مثلا در سر است همین فابریکی که در ابرو است همین فابریکی که مثلا ریش است ریش زیاد میشه بروت مثلا زیاد میشه موی سر زیاد میشه اما در وسط ابرو نمو نمیکنه اگر یک شما یک فابریکا بسازین وقتی که فابریکه را ساختین باید کلش تبلیدو زیگه وقتی که کلش کلش کلش باید یک قسم چهجوری اما اون چه برعکس خدای عزوجل مثلا موهای ما زیاد میشه اما ابروها به حالت عادی خود میبونه هر کدام از وقتی که انسان سایل میکنه وقتی که به طرف موی چل میکنی به طرف ابروهای چل میکنی به طرف ریش چل میکنی به طرف بروتای وقتی که میبینی کلش فابریکا هایی است که خداوند متعال جل جلاله جل یک یکی ایره خلق کرده ولی یکیش به یک شکل نموم میکنه دیگهش به شکل دیگه نموم میکنه در کلی از این قدرت خدای عزوجل نشون میده که چیزاتی است که همه از اینها بر ما خلق کرده در دهان انسان بسیاری وقتا آب آب دهان است مثلا 24 تا آب دهان اصن نیست نه. وقتی که ضرورت شد اتوماتیکی مثلا شما یک روز یک چیز خشک میخورین یک روز دلتار میش مثلا نخود میگیرین خوب اما تو میده میده میخورین و این میدگی تخمه کت قاشق مثلا ده قاشق میخورین برای ده 10 قاشق از آب هست که اینه بر شما آماده میسازه که هضم بشه ده قاشق نخود خشک میدهگی نخوته. بهشوری کساتل خان میخورن تو مایه میگنن تو تو تلخان میخورن اینال وقتی که توت هم میخوری یا تلخان میخوری هرقدر که خورده میری اونمون فابریکی که در وجود هستم ایره تولید کرده میره آب میکنه می نمیکنه تولید اما اگر آب دهان جریان میداشت پر میشید اگه وقت دانت ساز یازد کجا میرید مبرم امید دانم او پر شده پست ببین نیست بس دمی آدم فکر میکنه که این قدرت خدای عزوجل را شما سلب کنن که چشمه از در دهان من الکی نه چشمه به مو که ضرورت است آب اومده میرن اگه چیزای خوشگلم میخورن اتوماتیک پس این رو وقتی که انسان به طرف اروز وجود خود سیل میکنه اروز وجود انسان دلیل به چی است که خالق هست ذات مهربانه است که برمت تمام ضرورت های وجود مرا خلق کرده و ما از تمام این نعمت ها استفاده میکنم و کل هر چیزی که در وجود ما است این با حکمت است. یک دکتر گفت گفت ما یک وقت گوش های یک نفر مثلا چهار طرفش چه اینی خالیگاه های گوشن اینی قسمت ها شما میبینید خالیگاه هاست گفت ما یار موم کنیم وقتی که یار موم زدیم گفت شنوایی یزی تغییر کرد درست شیده نمیتونه پس امی سوراخ هایی که در این قسمت ها است این وظیفه خاص و را دارن که صوت از که برور وقتی که او رو تنظیم میکنه و به داخل میفرسته که ما شما گفه نورمال مشنویم در هر کدامه از اینکه هر چیزی که در وجود خود انسان ببینه در یک حکمت است که خدای انسان انسانها را خلق کرده بشینی شما ایناله از این خاطر قرآن از و شما برای ما چی میگه که شما چی کنین در وجود خود در مراحل خلقتتان در وطن مادر فکر بکنین باور بکنین ما در مسئله این خلقت در میز زمستان گذشته یک تفلک از یکی از دوستای ما پیش از مثلا باید نو ماهش و باید تولد شده این نهی که در ماه افتم تولد شده بود یا چندون بود خب مقصد یک ماه یکونی ما پیش ای تولد شده بود د اینمی یکونی ما باور بکنین که امید تفل مثلا از روز که این نطفه بلاخر کلان شده میره کلان شده میره مراحل شخص شما خوبتر میفهمین شما ببینید که طفل مکمل بود جور بود اما نگهداری از این طفل خدای عزوجل در بطن مادر با قدر مادر غذا میخوره عرکت میکنه حتی سپورت میکنه تا میگرده حتی, حتی کالا میشوه حتی کارای زیاد میکنه ولی این امی تفلک وقتی که تولد شد مادرش هیچ کار کردن نمیتونست، و ایر دبین ماشین مانده بودن و 24 سات ده پشتر ماشین شیشته بودن که یک دقیقه برق نره که یک دقیقه مثلا موادش کم بود نشه و داکترها میمدن 24 سات دیره 24 سات امی طفل تقریبا نکنی ما تحت مراقبت بود یعنی این نعمت خدای ازوجه است که در شکم مادر طفل کلان میشه تا نموحگی اونم طفلاکی با چی حالت اگرمو یک ماه مثلا در مراحل دماگی دماگی تولد میشد و این اختیار مومی بود که تا نو ماهه اما تو چیز کنیم شاید بسیار انسان با تکلیف مواجه میبود لکن امی تفلک در بدن مادرش میباشه مادرش احساس نمیکنه کدام طفلی که استثناا مثلا یک ماه پیش یا دو ماه پیش تولد میشه شما ببینید که چه قدر مشکلاتی را مادر از او متحمل میشه بیران خدای عزوجل ذات مهربان است که انسان خلق میکنه برشخزا هم میرسنه. این میره خدافان در مطال شما در زمین یک نظر بکنین که امیره کدام ذات و کی کار کرده و کی میتونه که بین امی شکل زندگی یک انسانه و او تفلک خورده که در بطن مادرش است ایره کدام ذاتی است که ایره به این شکل اخدار منظم و ایره ترتیب و تنظیم کرده و ایره حفظ میکنه. زنده ساختن و میراندن شما ببینید که و هو الذی یحی و یمیت خدای هست که زنده میکنه و میر امروز بزرگترین شخصیت ها مثلا ب... کسایی هستن که شاید اگر به حساب پیشه باشه شاید به با میلیاردها مصرف بکنه تا که زنده باشه اگر به با حساب طب باشه شاید به با هزارها دکتر بره و بزرگترین خانه ها رو بسازن و به میلیاردها مصرف کنن که رئیس جمهور یک کشور نامرا اما وقتی که وقتش پوره شد خدای عزوجل است که از را قبض میکنه پس نمیتونه این انسان با اینمی قوت خود با اینمی سلاحهای اتمی که داره یک انسان از مرگ نجات بده وقتی که نوبت مرگش رسید خلاص شاید هرقدر اکسیژن بر ازو اکسیژن داده میرن ولی او از بین میره بس این قدرتی هست اما یک انسان غریب و بیچاره و فقیر ببینی که در یک بغل کو زندگی میکنه خداوند برازو که هیچ دکتر ام نیست هیچ طبیب ام نیست هیچ امکانات طبی هم نیست هیچ امکانات, امکانات سیه هم نیست اما متفل تولد میشه کلان میشه جوان میشه این قدرتی هست؟ قدرت ذات است که خدای عزوجل است که این انسان خلق میکنه به این شکل و در اونموج هم برازی زندگی میکنه پس خداوند میگه که شما فکر بکنید که از از عقلتان کار بیانی که کی زندگی میبخشن و کی میمیرانه و کس میتونم مانی ازی شده پس وقتی که ما انسانها ها مانی ازی شده نمیتونیم و او زندگی میتوه برای انسان مثلا وقتش که پوره شود وقتش رو کرده او خداوند و کس نمیتونه این تغییر بتن این کلش دلایل است که خدای وجود داره که باید به با او اعتراف بکنیم بعد ازی قل بنگه که در مورد رزق خروزی تان فکر بکنن که قل من من یرزقوک من الاسما و الارب بوش قل من یرزقوک من الاسما و الارب برشون بو که من کی یرزقوک رزق میته شما را من از سمای از آسمان ها و من الا و, و قل من یرزقوک من الاسما و الارب کی میتونه نا که شما را رزق بتا و کی شما را رزق میته از آسمان ها و از زمین نمیتونه یک انسان مثلا از آسمان ها چیز را بدون امر خداوند نازل بکنه و نمیتونه که مثلا کسی یا کسی را رزق بته یا روزی بته یا کسی مثلا در از کمی بیاره یا زیادی بیاره انسان تا امروز نتانسته که یک انسان که حداقل اگر خداوند متعال جل, جل و خون وجود را خوش کنه اونا ای قدر میتوند که مثلا خون من رو بگیره برای خودت بده. خون خودتا انتقال بده برای من. او هم اگر گروه خونش سر بخورن. در غیر از او تابال کسی نیست در طول یک قرن زامت کشیدن که اینا یک فابریکه خونسازی بسازن. تابال انسان ها فابریکه خونسازی ساخته نتانستن. به نهان خون هم یک رسق است که بر انسان خداوند میتوند. که اگر خون نباشه در وجود انسان انسان از بین میره. پس کی هست که برای شما مثلا خون میده کی هست که برای شما رزق میتن؟ کیست برای شما روزی میتن؟ کیست برای شما اینمی وسائل رزق اسباب برای شما آماده ساخته؟ درست است ما برای شما در عالم اسباب زندگی میکنیم مجبور کار بکنیم زامت بکشیم دست خدا عرکت بتیم پای خدا عرکت بتیم او تو نیست که مثلا انسان مثلا بگه که خداوند بر روزی میترد از آسمان قرار من او قسم هم نیست خداوند در پالو یزی که همه چیز خلق کرده بر انسان عقل داده باز بالا اسباب بر تو دست داده پای داده چشم داده فکر داده تا کار بکنیم لاکن میگه کی میتونه که شما را رست به اگر از آسمان ها و زمین کدام ذاتی از که در زمین آب برتان پیدا میکنه و کدام ذاتی که از آسمان آب نازل میکنه و تاستازی همه چیز زنده میشه. این خداوند مطال برای انسان در هر چیز بالاخره عقل مثلا میگه که شما در طبیعت و حوادث طبیعی نظر بکنین. شما ببینین که در خلقت و آسمان ها زمین تغییر، تبدیل شب. نفی خلق ساماوای وال عرضی ولافلیلی و نهار وفلکلاتی تجریفیبححر این نمیایی که شما میخواید در خلقت آسمان زمین تغییر و تبدیل شب و روز خلقت دریاها روان شدن کشتی ها در بحر ابر باران جالب برد دوباره سر شدن و زنده شدن زمین بعد از فصل زمستان بادها و غیره حوادث و صحبتنامه های جهان هستی برکل هزی خداوند مطال انسان رو می شما در باری کل از اینا فکر بکنین وقتی که درباره از اینا انسان فکر میکنه که خب این بادهاست کجا میشه؟ ابر از کجا میشه؟ ای عبر با امرهای خودی باران میره دیگه روز برف میره یک دفعه کلش گم میشه یک دفعه دنیا رو عبر میگیره کل ترتیب و تنظیم عزی این رو کی میکنه؟ یک انسانه که عقل داره و عوش داره در باری کل عزیز فکر میکنه و میفهمه که ذاتی هست که اینا رو کلشانا خلق کرده بالاخره خداوند مطال انسان دعوت بیکنه که شما در مورد حیوانات فکر بکنین شما در بار حیوانات فکر بکنین آله وقتی که یک حیوان برگ درخت میخوره سبز است در داخل وجود از این فابریکه است که اینمی برگ سبز هم به شیر سفید بسیار لذیذ مبدل میکنه اگر از نگاه فکر انسان باشه اینمی گزفند همه خودمی یفته آب دادم و امی گوسفندم هر دمی طول هفته کلش برگ دادم پس ما بریم برای چند نفر بگیم اینا تو پروفسور صاحب که بسیار دعوا میکنن که بسیار میفهمیم ما برات یک بورجی کام میتم و برات یک 200 لیتر آب میتم یا الله بربانی که برای ما شیر بساز یا ازی خون بساز یا ازی مثلا امی گوسفند چاق میشن فابریکی گوشت سازی هست ازی گوشت بساز از برگ و از آب اما اتو هست که میگه من خداوند میگه من امی چلون جمعیتان و من هستم که نمیده خلق میکنم من هم آب ما محیا میکنم ام ما محیا میکنم و هم در داخل بطن اینمی گوسفنده که آجیزه که بسیار ضعیف است در داخل بطن ازی چندین فابریکر را جای با جای کردیم که از اینمی برگ و آب گوشت هم تولید کنه دنبه هم تولید بکنه خون هم تولید بکنه شیر بسیار لذیذ تولید بکنه این حال وقتی که انسان سهل میکنه ولی عزیز برک خب ما تاباله آل کدام فابریکی تابال در دنیا ساخته شده که بگیه ولی بر ما عبوب تینکت برگ ما براتان خون میسازم کدام فابریکی تانستان بسازن که بگیهان که امی آب و بتین با امراه همی برک ها ما شیر میسازم؟ نمیتونه ساخته. مرغ ببینن که چی را میخوره؟ بسیاری وقتها ها مرغ سهل در بسیاری کوچه ها کسافات میخوره. بسیاری وقت ها مثلا میدگی های نان اضافی را میخوره. بسیاری وقتها گندم ها میخوره. لکن با وجود ازمی وقتی که تخم میدن تخمش شما ببینن که دارای چی ویتامین ها و دارای چی چیزایی که داکتر ها میگه شما تخم بخور اما اگر از خوراک مرغ سل کنی آدم شاید بایدی چمی تخم مرغ نخوره لکن خدای هست که از اینمی چیزهای اضافی که مرغ میخوره یا بر مرغ ها رو در ماشین ها میده میده می کنن غذا تحییه میکنن. خیلی اگر انسان میتونست همین استخانه رو کسافات از روی کوشک های شای جمع میکنن میبوردن در ایک فابریکه منداختن ایچ ضرورت نبود مرغ میساختن. لکن برعکس از خداوند در داخل مرغ فابریکی رو ساخته که تمام اونمو غذاها را تصفیه میکنه. بسیار غذاهای عادی عادی رو تصفیه میکنن و ازو خوراک های بسیار خوب و بسیار زیبای رو برش خداوند خلق میکنن به این شکل اگر انسان به طرف هر مخلوق رو کنه. افلا فلا ينظرون الى کیف خلقت خداوند مطال جل جلاله میگه که چرا شما نظر نمیکنین به طرف شطور کیف به خلقت ببینین شطور چه قسم خلق شدن یک دانشمند چندین صفحه در باره شطور نوشته کرده که شطور خاصیت های داره که او میتونه مثلا گفت که هم وقتی که من نظر کردم شطور وقتی که در صحرا میره اول دیگه اگر اصل او صحرای ریگستان بره پایش شبن ریگ گور میره درست سفر کرده نمیتونن اما چطور پاییش خداوند به شکل خلق کرده که وقتی که عم تو پای خدا میمونه در گور نمیره در صحرا غالبا خوراکای خوب نیست گیاه نیست زیاد گیاف شده خوار است اما شطور خداوند می دانش الله بهش کتاک کتاوام تو شما تو چیز خلق کرده که می بستم بوته خاره می رام ما ما پرده میره هیچ خبرم نمیشه هیچ اگه تو بخوری وقت بگی وای وای وای وای اما اونمو خارا کتا کتا هم تو خورده میره اچ لباش به است کلش میخوره اینم حکمت کدام ذات است خدای هست که دانسته که اونمو چطوره که تمو صحرا وظیفه داره عطا میگه در صحرا که میره بسیار شماله هست چشما شود چشمایی چطوری یک قسم خلق شدن که به طرف پشت سر است که هر خل از طرف پیرشوری شمال یک دانشمنده که وترنر بوده او در می زیر ایت شریف افلا ينظرون الابل كيف خلقت چندین صفحه نوشت کرده در تفسیر که من جای خواندم نوشت کرده که ای خاصیتها رو شطور داره ای خاصیتها رو شطور داره ای خاصیتها رو شطور داره که کلش بر چی بدرد بیخورد بر یک انسانی که میبینه میفهمه که خدای از و جل بر هرکس ساختمان فیزیکی داده اهمیال مثلا پرنده ها چرا این قسم ساخته شدن شما ببینین بسیاری کسا مثلا هر حیوان مطابق اونم ساختمان فیزیکیش را که میکنه عوامم ساختمانش به بر ازو موثر است مثلا پرنده ها همین باز یا باشه همین بینی کجی از این بالا از این ساختمان از ای در پرواز کردن بسیار تاثیر داره از این خاطر بزرگترین این هایی که خواستند که تیاره ها را بسازن اونها چی کردن تیاره خود مثل باشوار جور کردن گفتن ساختمان فیزیکی باشه در پرواز زی بسیار تاثیر داره. همین ساختمان خلداومند خلق کرده این آماده ساخته که پرواز بکنه همین پلنگ وقتی که دست میزنه بسیاری وقت همین تکواندوبازا و و سپورت ماین ها رو ببینید یا سر بسیاری عرکت های شادی و پلنگ و یا رو اجرا میکنن میگهن یه حرکت میکنن نمیکنن مییکی عرکت های از یاکس اونمون اکن اشکال دفاعی خاص خوده داد چاک وقتی که دست خدا چیز میکنن ایناله مجموعه ای سپورت ها از بسیاری از حیوانات گرفته شده دفاع هایی که حیوانات میکنن حملاتی که حیوانات میکنن خیزهایی که حیوانات میذارن از این خاطر چی ولی متاسفانه یک سپورت های ما وقتی که میرن یا به خارج میرن باید شخصیت ایمانی خدا حفظ بکنن تا تا که مثلا های کره چی کردن سپورت کوریو، های افغانستان وقتی که با کوریو میبرن، این خوب وزن و خوب قوی هست و خوب مثلا تکواندو باز است، خوب کرات باز است و خوب مثلا کمربند سیاه داره، لکن عقلش هم سیاگشته. چرا عقلش سیاگشته؟ که او کوریایی برازی میگه که بردم قابل او بوت احترام کو. باز برازو با مثلا بین یک قسم بطای ما میکن، میکن، میکن تو بر بوتای خود حالا خم میکنه و این افغانی اسپورتمن ما تو را میگه میگه تو اون برو پیش بوت خام تو باید برشموی که برادر تو خوب بود که میری پیش از بود خدا خم میکنی من آغاز سپورد با بسم الله الرحمن الرحیم میکنم اینو میگم بسم الله الرحمن الرحیم کراته شروع هست نیست همتون و،, و بسیاری اوقات خواستن که دین خدا در ورزش داخل کنن خب او که دیر خدا بوت او که داخل کردن و قسم حرکت های چیز دارن. توی خدا پخش میکنن بهش بوت خد کافر است تو خوب بوت پررس ازرککش و بر بوت میکنن تو سپورت پین مسلمان تو چرا این کارو میکنیم تو باید درقل بجب بویی که واران من مسلمان هستم وقتی که من مسلمان هستم اگر میخواین که م این سپورت اشتراک بکنم امرراه شما باشم بالاخره من این می و سهجار نمیکنم اوجا که در کرهیان یک دانه بط هست اما کسی که نو کانفور رو کرده او رو بطش هست ساختن برازوی سجده میکنن برازوی روکو میکنن پس تو چرا برازویش میکنی؟ بگی من چی کنم که اختراک کرده یا نکرده ما برازوی سجده کنم من باید به خدایی سجده کنم که برمین اعضا و احضلات داده تا که من بطونم همی سپورت ها رو بکنم یا از سپورت ماینای ما هستن متاسفانه که در وقتی که در خارج میرن تمام قوانی از اونها رو میپذیره برش بو یک برادر اگر میخواین من مسلمان است، من نمیخوام که عورتم معلوم شود اگر میخوام لباس من از زیر ناف تا زیر زانو این نمی سطر عورت است میخواین من که گفتن درست از زمین سپور نمیخوین خلاص با امان خدا مایش او مجبور میشه این خلاص ما قبول داریم ات کافر که بفهمه که تو مسلمان هستی معتقد و تو بدینت گرایش خوب داری عمل میکنی اما برت احترام میکنه ما این رفتیم اون دو بر ما گفت تا که گفتن او اون استاد اون اتاق رو بروکاس اتاق نمازخانی تن است وقتی که نان تن خوردین 12 تا یک گفت وقت قضا هست از یک تا یک کنیم چون شما مسلمان ها هستین ما بر شما فرصت میتونیم 1 ساعت وضو بکنین نمازای تن اون دو به ما احترام میکرد میفهمید که ما اگر بگوی که من وعدی نماز درس شما افتیم. ما در نماز که دست باشه ما به درست حاضر نمیشه. ما وقت درست تقییق بدمیم. ما. مسلمان ها میگن. میگن. به نماز مگو که کار دارم. به کار بگو وقت نماز است. مسلمان وقتی که کار بود برای مالک کار میگه. برادر من مسلمان است. این وقت نماز است. من نماز میخوانم اگر خوش نداری که من کد کار کنم، الی تقسیم اوقات تا به این سیستم جور کنم. خوش نداری با امان خدا خدا هیچ کار نمیکنم. اینا انسان برابر میشه که تک انسان بی دین تو کار میکنه، انجینیر است. بعد میگه نه، از صبح تا به شام هیچ برای نماز نماز نیست. خلاص روزی اه؟ من خلاص، روزیم خو پشتون است. ها؟ من خدا دارم دانش خدا دارم. تو مری 1000 دلار میش میدی، نه تو 1000 دلار، مریم تا 5000 افغانی کار میکنم، لاکن با ایمان. 1000 دلار بی ایمان. انال خدا باید ایمان خود در مقابل پیسند نباید گفتش اگر فروخت خوب انال ای دلایلی که در قرآن عظیم شان است دلایل چی هستن دلایل عقلی و دلایل حسی قرآن عظیم شان بود همین سره دلایل دیگه که دلایل فطری به وجود خداوند متعال جل جلاله هست الان وقتی که به دلایل فطری می در دل دلایل فطری قرآنی شما ببینین قرآن عزیب و شان سنت نببی و عقل انسان این دلالت میکنه که انسان فطرتاً با ایمان است و خداشناس است از نگاه قرآن آیت قرآن چی میگن؟ آیت قرآن عزیب و شان اونمو آیت شریفی که الستو برب یک آیت شریف است که میگه و از اخذ رب بکم بنی آدم این ظهوری هم ظریت هم و عشاده مال انفوسی بالاستو بر به کم قال بالا. انال یک انسان از دیدگاه قرآن قبلا دلایل قرآنی را خوانیم آل دوباره بچی را دلایل فطری. در دلایل فطری هم قرآن شهادت میده که انسان فطرتا با ایمان است. هم احادیث است که شهادت میکنه که انسان فطرتا با ایمان میباشه و هم عقل انسان شهادت میده که انسان فطرتن با ایمان است از نگاه قرآنی خداوند مطال در قرآن از و شان که انسان ها را که در عالم ارواح و شکل زوریه از اینا وقتی که ما خلق کردیم از زوریهشان از اونم و عالم اینا را کلشان را پرسان کردیم که الاز تو بکن. اوبا پروردگار شبانه اسم قالو کلی كله گفتن که بله خدای تو پروردگار ما هستی بناهن یک طفلی که در خانه مسلمان پیدا میشه در خانه کافر پیدا میشه در خانه اوندو پیدا میشه در خانه مسیحی پیدا میشه در خانه هر کسی که پیدا میشه این ایمان فطری با اساس آیات قرآن داره براین ای با ایمان است اما وقتی که پسان بی‌ایمان میشه این کار خودش است لکن فطرتن در وجود انسان خداوند چی را گذاشته ایمان گذاشته. بناهن خداوند ذات مهربان است. انسان به اساس ایمان خلق کرده. اما متاسفانه در مسیحیت چی میگن؟ در مسیحیت که مردم بازی میدن میگه که اصلا انسان ملعون شده. باز خدا بچه خدا روان کرد ما را از لعنت کشید. چرا خداوند ما را ملعون خلق کنه؟ خداوند کل ما رو شما رو چی خلق کرده؟ پاک و با ایمان؟ بس هر تطور که در خانه هر کس پیدا میشه ی ای با ایمان است در احادیث پیغمبر مثلا حضرت پیغمبر صلی الله علیه و وسلم چی میگه پیغمبر صلی الله علیه و وسلم میگه که عن ابی هریره در صفحه 61 در پاورقی کتابتان سال کنن حدیث 60 عن ابی هریره قال قال رسول الله صلی الله علیه و وسلم حضرت ابی هریره رضی الله تعالی عنه میگه که رسول الله صلی الله علیه و وسلم چی گفت کل مولودن یولد علی الفطره هر طفل در خانه هر کسی که پیدا ای با ایمان چی پیدا میشه؟ ایمان فطری ثم فعبواه و پس والدینش یا هی یهودی میسازن او نصرانی هی یا ایر نصرانی و مسیحی و کریسیان میسازن او یو یا ایر مجوسی و آتشپرست و بدپرست میسازن اینال بخاری شریف کتاب الجنایز حدیث نمبر 1296 بناهن به اساس این حدیث شریف هر طفل که در خانه هر کس پیدا میشه هر طفل بر اساس رحمت خداوند متعال جل جلوهو با ایمان فطری خلق میشه ولو که در خانه غیر مسلمان باشه پسان باز والنش ایرمه میبرن برن و بدخانه پسان والدینش فطرت دیده تغییر میدان وقتی که جوان میشه ایره باز میبرن برن بود پررس اوندو می سازند مجوی می سازند اما خدای از انسانه به خاطر رحمتش با ایمان فطری خلق میکنن ازی خاطر طفل معصوم در هر جایی که پ پیدا شوندن تا وقتی که جوان نشده این محصومیت داره و پاکی خدارن خدا داره او در دا کافر هم باشه عزی خاطر اون دوا رو دیده باشین که طفلای خودا که خطرک میمره بوده رو گور میکنن خودشان میفهمند باز وقتی که کلان شد و جوان شد بازو اگه مرد، بزورا میرن درش میدن اما طفلک خود چرا که طفل خود در خانه هرکس که پیدا شوه ای تا وقتی که جوان میشه ای معصوم است پاک هست، با ایمان است لکن والدینش پس اون اینا گمراه میسازه بناا نقش والدین در گمراهی بسیار مهم است بسیاری از والده هستن که اولادهای خودا بیتر بیه اجازه میتن تمام روز پیش فلمای خراب و تمام روز ببینی یک بچه اکس فعال مکتب است. هر شو کشتی کاج سهل میکنن از یک وحشی جور میشن برای این طفل باید برنامه های خوب میره نشان بتن یک جوان از 24 سال که تو ها تمام روز دو اون دو بلاخره خوی اندو رو پیدا میکنه. بی غیرتی اون دواره پیدا میکنه حالا بسیاری کسایی که ایمان درست ندارن عقیده درست ندارن یا جوانایی هستن که زندگی خودم مثل فیلما و بچای فیلم جور کردن میگه والا سر یک دون یک دختر به قلب پاک و به نظر پاک سل کنی پروانه نداره چطور پروانه نداره اگه سن همشری خودت یک نفر سال کنه خوب اما تو چشمای شیخ قسم باشه بگو چرا سالر بگو والا قلبم پاکه سالکیدام روش میذنه پس وقتی که به طرف خواهر خود اجازه که کس به نظر طرف خانه خود سل... اجازه نمیدی چون تو جراحت می‌کنی طرف خواهر خود فامیل کسی دگی سلب بکنی و باز بگی من قلب پاک هست این قلب پاک نیست و قلب است. چون شیطان قلب ازیر سرچپا ساخته به حیایی رو برش پاک نشان میده با طرف ناموس مردم خدای عزیز و جل بر برما میگه خداوند متال جل جلو ما میگه که قل و قل المؤمنین یغود دو من افساره هم بر مردهای مسلمان بگو که شما چ به طرف نامحرم سال نکنین و کل مؤمنات و بود باید میگه که برای دخترای با ایمان باید شما هم به طرف نامحرم به نظر ایت سال نکنین تو قاعده کاری که به نظر پاک یا ناپاک گفته که به طرف نامحرم کوشش کو که سال نکنی به خاطر ازی که مجرده که تو به طرف نامحرم سال کردی شیطان وقتی مود کنترل تا خود میگیره بیک خوب نگا هم سال کو خوب نگا هم سال کو اصلا من پاک سال میگم با شیطان میگم نظر تو پاک است عاشق شو عاشق پاک است این کلش دروغ است کلش خایشات نفسانی است که انسان فریب میت و بازی میت و به این خاطر برش ای, ای, ای کارم کرد. از این خاطر انسان اگر میخواد که امی کار پاک است یا ناپاک است، سر فامیل خودی رو تدبیر بکر. را اگر یک انسان غیرت هست، یا یک انسان بیمان است، یا یک انسان است که سر خواهر خود، سر مادر خود، سر دختر خود، سر همسر خود، بند وزن نیست، هر کس که شدید است، کرد اروپایی خامه تر استن. اروپایی که کت خانم شک نفر میگه که شورای دانس ویتیو یشیش شده، خانم میخواد مگه یا لا بخی کت دانس نه م نه خالما ما به کشورهای اروپایی سفر کردیم رفتیم دیدیم اینم یک قسمی گپ اما تو یک مسلمان بی ایمان آیا امی جرات می کنی اینا یک جوان مسلمان با ایمان آیا خودش اگر یک جوان دیگه به طرف خواهرش سائل کنن و بگه که من به نظر پاک سائل میکنم من نظرم بد نیست اجازه برش می میکنه نه, نه نه نه پاکی اونا پاکی نیست برو اون طرف خدا گم کو نه آگه هستم باز نیستی ها حال وقتی که انسان به طرف خواهر خود علی چیز خوش نداره پس باید به طرف خواهرای دیگر هم در نظر بد یا به یکی شیطان به یکی نظر خوب است سهل نکنه خب ایناله گفتیم خداوند متعال جل جلو انسان با فطرت سالم خلقه داره پیغمبر سمه که هر مولود در خانه هرکس که پیدا میشه با ایمان چی پیدا میشه؟ با ایمان فطری باز والده نشست از که رو گمراه میکنن این والده رسی جوان مسلمان چرا که به غیرت شدن بخاطر خاطر اینکه والده اینش 26 سات بازی فلم ایندی رو چالان کردن میگه با ما بشینی ما شوی با دیک بشینی اینال ما شما کتی دیگاه سیای اوندو ایندی نه یا ای کشیشتیم اینکل کلگی غیرت شام تخیر کرده ایمان شام تخیر کرده شرافت و کرامت شام با این خاطر. بعضی را میذارن که او از جزء عقیده اسلامی نیست، خارج از عقیده اسلامی است، از فرهنگ هندوها و از فرهنگ اروپایی ایگاپا رو یاد گرفته. در حالی که مسلمان ها یک فرهنگ خاص، فرهنگ خاص خود را دارن. مثلا از دیدگاه اسلام غذای روح قرآن است. الا ذکر اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. با یاد خداوند قلب انسان اطمینان پیدا میکنه. بنان آیات قرآن میگه که غذای قلب تو یاد خدا هست. غذای روحی تو تلاوت قرآن است که اگر بکار مادی قرآن از رو بشنو و امانایش بفهم این قلبت رو راحت میسازه آرام می سازه. اما انگلیس ها چی میگن؟ انگلیس ها میگن که موسیقی غذای روح است چون اونا قرآن ایمان ندارن پس انال کسایی که فرق از بین او مسلمانه که از فرهنگ اسلام و فرهنگ قرآن استفاده میکنن و فرق از بین از او انسان مسلمانه که خودش مسلمان است لکن ضرب المسیل های ها را سر خود تدبیق میکنه از جملی دلایل عقلی به فطرت سالم انسانی یک آمد پیش امام جعفر صادق رضی الله تعالی عنه بردیگو که ای امام مسلمان ها ای عالم بزرگوار ای شخصیت بزرگوار من چطور و که خدایی وجود داره این گفت در فطرت تو در فطرت تو یک پرستی و خداپرستی وجود داره. گفت از کجا؟ گفت شما ببینید؟ شما خواستین که برین به یک سفر در بین کشتی سوار هستین وقتی که در کشتی سوار هستین در وسط بحر که میرازین کشتی کدام شکست پیدا میکنن و کپتان کشتی و مسئولین و انجینیرای که در بین ازو کشتی اصلا اونا میبرتن که والا برادرای عزیز ماظرت میخایم کشتی شکسته آماده غرق است تک تک میشه و ما دیگه قدر که مخابره کردیم سیستم مخابراتی هم کلش خراب از دیگه دیگه راهی نیست بجز که ما و شما غرق شویم گفتمی لحظه که کشتی شکسته میره و تو غرق شده میری دمی لحظه چه احساس بر تو پیدا میشه گفت حالا این لحظه که من حالت می باشم در فکرت گفت چی پیدا می شد گفت فکر ما توی اگه پیدا می شه که در اینمین لحظه آخرینی که دیگه عالم اسباب قطع شد دیگه وسایل و انجینیر رو کشتی و کی جواب گفتن دمی لحظه در قلب ما چی پیدا می شه در فکر ما تو فکر می کنم که ذاتی وجود داره که اگر خواسته باشه در این لحظه هم مرا نجات میده گفت اینمی ایمان فطری هست حد تا سختترین مشرکی رو کفار هم ازاره کی بود فلفل کی وقتی که در کشتی مگه سوار میشندع الله مخلصین ماخلصین الله باز باز او خدایم آران جاده یا الله مارا نجات به ما بودم مشکل هستیم باز وقتی که برمدن باز پس مشر و که کافر و بیدین میشن از این خاطر چون در فترت ضی ایمان نهافته است و اساس خارج شدن از فترت بیمان شدن لا در وقت ضرورت پس ببینی بینید عامی نفر چی میشن یک نفر مییم بسیار از بالوچ از به جااب استقل آایلو از ساستین از چشما هااشش سا از خارج آمده و بسیار آثار اسلام دینی نیست. واس یک کس سرش مشکل به او خدا جان چطور کنم او خدا جان و خدا جان چرا در فطرت اصلی اصلا ایمان داری است. فطرت پاک خود اگر گرفته چی کردن؟ با فطرت با حرکات زشت خراب بیمانی فطرت سالم خدا از بین بردن. جوانایی که در اطراف هستن فطرت سالم دارن. وقتی که تل میگه؟ السلام علیکم. موندا نباشید. میگنم میگن. اما وقتی که در طرف الصنف می چیل تا جوان اس نه سرت لغلق ساله كده اي فترات دي چه جدا فترات از هر كلمه چرا ده زبانش است که السلام عليكم همه قلیو نداره بعضی کسا رفتت فتراتش انگلیسی انگلیسا خراب کرده ای وازی که بگه السلام علیکم میگه صبح بخیر این صبح بخیر از کجا كده رسول خدا میگه وقتی که یک مسلمان ملاقات کرد بگه السلام انگلیسی ها میگن وقتی که صبح کسی دید بشه گود مورنینگ این فطرت از این خراب شده ایوازی ای که بگه السلام علیکم و رحمت الله و برکات و چه ثواب بگیره چرا که تا سلام دادن السلام علیکم 10 ثواب و رحمت الله بی ثواب و برکات سی ثواب ایواز ای که بخوایا که ثواب ها رو برای خود جذب کنه وقتی که صبح کی دیدی که علی حساس دیگه تحت تاثیر انگلیسی ها رفته حالا دیگه نمیتونه بگه گود مورنینگ کم کم می من باز می صبح بخیر اسو بخیر از کجا پیدا کردی این فرهنگ انگلیسی سر خط تطبیق میگن بلان فطرت سالم خود ما بسیاری وقتا وقتی که در شهر آمدیم و در زندگی شاری کردیم زندگی شاری اکثریتش خارج شدن از چی از فطرت سالم اخلاقی ایمانی انسانی در اطراف وقتی که یک نفر فعود بکنه بس قریه کلشون خون میشن کل گیا آدم میشن من فلانی کل هیچ کس به وظیفه به کار نمیره میگن اما دیگه چون فطرت سالم عزی. ایره صاحب بلاکا و سیستم روسا ساخته شده ایرو ها ساختن حالا مجبور اینجا فرهنگ روسی است ده اینجا مرد است تا دیگه در تخت تقتق میگم یک برادر اینجا فوت کرده لطفا یک پنج رقمی و دانبکتان را روسی سمیر چوب کنین که ما ام جنازه را بکشیم باز خیر است برو بیادر هر هرکس ها هرکس دلش دلشو هر میفهمه کارش یعنی چی که بس تغییر فطرت سالم ایمانی هست. بناهان به اساس دلایلی که گفتیم که در قرآن عظیم و شان است در احادیث است و به عقل انسان است ای کلشان ثابت میکنه چیست؟ اینال امام جعفر صادق برادی چی گفت؟ گفت خب امی که در کشی سوار شده امی گفت در فکر آمد بناهان اینه میست کنه خدای عزیز و در وجود تو ذات هست و احساس میکنی و ایمان داری که خدا هست ایمان ایمانت فطرت ایمان پتریت از بین بر متاثر شدن به دیگرها از ایمان فطری به کفر و به گمراهی حرکت میکنیم به همین شکل ما اگر از نگاه اخل خود خودی یک انسان مثلا کسایی کهعاقل بودن انها در باری وجود خدای از واجل فکر کردن ما میبینیم که و سط دلیل است که مثلا دلیل اقلی هست که مثلا قبلا گفتیم از جمله دلایل اخلی مثلا وجود مخلوقات است. هر مخلوقی را که ما شما س میکنیم ساختمان فیزیکی مخلوع قسل میکنیم اناتومیش س میکنیم در فیزیولوژی فکر میکنیم. کل زینا رو در هر کدام از این دلیل است به وجود خالق از از این خاطر وقتی که سعدی به طرف برگ‌ها سائل می‌کنه چی میگه؟ میگه برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتر است معرفت کردگار وقتی که پیشر هم سیل پیشمور اینجا آورده ما سر کنیم طرف ابرویش طرف چشمش طرف گوشش مثلا مریش حلقومش ششش کل ازلک وقت می‌بینم هر کدام از چی هستن در هر کدام از این دلیل است به وجود خالق خالقی که اینا رو خلق کرده ساختمان فیزیکی هر مخلوقه وقتی که سهل میکنیم کلش دلیل است به وجود خدای از وجل تقسیم بندی وظایف هر عضو بدن انسان وقتی که ببینین وظیفه مشخص و کار مشخص خدا داره اگر بخوای که چشم بگید تو چشم جان بشنو میگن نه نه نه نه من چشم هستم من میبینم بینم ها گفته که ببین خدای عزا وجل گوشه گفته بشنو دسته گفته لمس کن پس این وظایف هر کدام تعین شدگی از طرف خداوند انسان تاوال نتانستن که توسط چشم بشنوه یا توسط گوش ببینه پس این کلش ثابت میگن که امر خداونده ببینه مسلمان دو قسم است خب یکی به حساب قوانین الهی کلگی تسلیم خداوند هستند ولو که کافران باشن کافران مجبور است بادست لغمه رو بگیرن کافر مجبور است که بادندان بجوهن اگر کافر همست مجبورت با چشم ببینه بناهن این که چشم ببینه گوش کار بکنه دندان بجوه زبان بایدیر کل ازگار وقتی که ما شما میبینیم کلیه به حساب قانون الهی تسلیم حکم خداوند هستند اما بسیاری کسایی که کافر میشن کافر چی هستن از نگاه عقیده مخالفه حکم خداوند میکنن اما به حساب نظامی که خداوند تعین کرده مجبور است کل دنیا خواسته باشه یا نخواسته باشن تسلیم باشه خواسته باشی یا نخواسته باشی حکم خداست که آفتاب از شرق برآید تو مجبور هستی نمیافتادی با اینمی شکش بپذیری زمین نمی کورویی بودنشت سعی که تو حال کس کردی که زمین کورو است اما این زمین کورویی رو خداوند به این سیستم خلق کرده تو مجبور زمین به این سیستم که خداوند گفته تو باید زندگی بکنی پس کلگی تسلیم هستند به احکام خداوند از نگاه 24 ساعت از ساختمان خود و ساختمان طبیعت اما بسیاری که باز با خود ارزش از نگاه عقلی تسلیم خداوند نمیشه به الاخر کافر میشه تقسیم بندی وظایف دلیل از با وجود خداوند مطال تولید مواد ضروری وجود در داخل انسان شما ببینین که اگر ما به اعضای وجود خود نظر بکنیم به اعضای وجود خود سعیل کنیم قدرت خدای عزا وجل از که در داخل وجود تو چیزهایی که وجود ضرورت داره خود به خود اتوماتیک تبلید میشه اینه میال بسیاری کسا همه که در آفتاب ویتامین دیست نمیفهمه دافتاب ویتامین دی نیست دافتاب ویتامین دی نیست اصلا آفتاب وقتی که نور رو خدا در وجود انسان می پردازم بناعا اینمی که نور آفتاب در وجود انسان برخورد کرد وجود انسان است که ویتامین دی تبلید میکنه وجود انسان است که باز ویتامینی D تبلید میکنه قدرت خدایه از دفعه است که در وجود انسان هر چیزی که انسان ضرورت داره به قدرت خداوند و با مهربانی خداوند خود به خود تولید میشه که شاید اگه انسان بسیار غریب و فقیر و بیچاره باشه لیکن در وجودش بسیاری از مواد ضروری وجودش نرمال کار میکنه یک نفر مثلا یک ماسک چالو میخوره پیاوه میخوره غذاهای بسیار ضعیف میخوره لیکن خداوند متال جل جلوه و بسیار ضعیف که بسیار ارزان است کچالو شلغم بونجان سیاه بعضی از سبزیجات یک دسته گندنه پنج 5 روپیه می خره ده اینام خداوند موادی را گذاشته که ضرورت های وجود از رو تکمیل میکنن شما ببینید که خون یک انسان اگر مثلا پیش خود یک مثال ببرین بگو که والا اگر من احیانا اگر من در وجودم خون تولید نمیشد چی میکردم اگر در وجودم خون تولید نمیشد چی میکردم بتون توستا تو تو که اگر احیانا خون به پ می بود و تو دو بیست چهارصد باید در وجود تو ما در تو پنج شش لیتر خون باید باشه باشه. خب اگر مثلا خون خون نمی بود و می ریم که تانک <تصفيق> بانک خون بود نه هر روز میرفتی یک هفته یک مرتبه یک هفته دو مرتبه یا سی مرتبه خون تا تولید میکردی چه خطر باید پیسه مصرف میکردی؟ بیسه هست امیال مثلا یک پنج ست سی, سی خون آدم کار داشته باشه چند از قیمتش؟ چای ده هزار پنج هزار ده هزار خب اگر تو هفته پنج پنج هزار رو تنها چی مصرف میکردی؟ برای خون ده چهار هفته چ بیست هزار روپیه مای بیست هزار روپیه تنها مصرف چید میشد مصرف خونت میشد این مثلا اینمی خونه با وجودت میخواستی که با وجودت انتقال بتی ترازه عقیل جانه مثلا عقیل میخواست که قلبش کار کنه قلبت میخواستی که قلبت کار کنه نه این حال قلب تو تو ماد نمی بود خودت خواستی که کار کنند خودت مجبور داری که چی میکردی؟ دست اکس داری می رفتی که چی شود؟ قلبش کار کنه قلبش ساد می بود مجبور که دست خواهد شورک نمی داد؟ خب وقتی دا که میکردی چی تو میکردی؟ مجبور بیدار می بودی؟ یا یک نفر را کرام می و می گفتی که دست مرا شور داره برو تا که قلب من؟ پس خداوند مطال جل جلو که قلب تو در پولی که مثلا بیشنین در پالو که خو... خداوند متال جل جالو خونه که وجود تو زورت داره وره خداوند آ... اوتوماتیک در وجودت فابریکی رو جور کده که دکترها چی میگن؟ بگن خونه قلب و خونه تولید نمیکنن مغزهای های که خونه تولید میکنن بس از مغز استخوان تو خداوند متعال جل جلاله 24 ساعته 5 لیتر الی 6 لیتر ضرورت خون تو را تکمیل میکنه. آی ذات مهربان نیست، آیا ریکو انسان کردن میتونه. اگر امی خون بدست انسان ها می بود، مثلا 5 لیتر خون هر روز تو مثلا ضرورت میداشی، 5 5000 5 5000 5, 5, 000, 5 000 مجبور در یک ماه که روز 5, 5 را تو خون خریده میرفتی، در در یک ماه 30 5000 ما چند میشه؟ یک 5 هزار کنیم تو مجبور بودی که یک۵ هزار هر ما تنها خون کنی و یک 5 هزار که خون خریداری میکردی او خون تاام یا میشد یا نف... یافت نمیشد شد روز میرفتی برو بل توان با سووا خلاص شده یا نیست یا چطور است یا چند. ولی خداوند مطال جل جالو و ساعت برای توی خون دادن. اصل نیست وجود انسان دگه شما ببینن؟ شاید کل تان ساینس خاندین نیازمندی هایی که وجود انسان داره در داخل که اگر او نباشه انسان زندگی نورمال کردن هم ضرورت به اکسیجن ضرورت به ویتامین ها ضرورت به کدام مثلا گاز هایی که ضرورت داره وجود انسان اینال تمام ازیار که شما از نگاهی ساینس خاندین این کل نیازه که در وجود انسان هست ایره خود ساینس به شکل علمی کشف کرده و این درس میتنه اما کدام ذات است که کل ازیر تنظیم کرده، کل ازیر خلق کردن بران اگر به طرف ار کدام از اینسان سل کنن کلش دلیل است به وجود خداوند مطال جلد جلد هون. مثلا ترتیب و تنظیم تمامی جهان هستی ما و شما اگر به طرف ترتیب و تنظیم جهان سل کنیم کلش دلیل است به وجود خداوند مطال قوات بخشیدن و اشیای بسیار عاجز. یعنی بسیاری مخلوقات هستند که بسیار هستند. بسیار ضعیف هستن لیکن خداوند روزی شنعاتو برشان میرسن رسخ شنعاتو برشان میرسن شاید ما با شما ایران بانیم شما فکر کنید که یک پرندگه که بسیار کوچک در زمستان پرواز میکنن کل دنیا رو برد گرفته همین مواد قضایی خود از کجا پیدا میکنه؟ یعنی ما شما مثلا در که شد یک مثلا خیل های خیل بگن چی میگن چی میگن یک خیل پرنده آمده یه چیزا ما شما این پرنده‌هایی را که می‌بینیم یاد از امسان کجا بودن و با کجا رفتن و ما تو که انسان هستیم چهقدر از امسان با تکلیف هستیم نه تمام روز بخاری بگی و صندلی بون و علی بخاری گازی بگی و بخاری تیلی بگی و بخاری چوبی بگی و تمام روز با مشکل همین پرنده‌هایی که بیچاره‌ها نابخاری است نه فلانی زفما نیست لكن خدایا از وجل بر امکانات داده که عمو پرنده عاجز اون تو جای پرواز می‌کنه که تو نمیتونی. ها شما ببینید مثلا امی بعضی از حیوانات هستن که در زمستان اینا رو یخ میزنن اصلا نیست اصلا بقاها زمستان چی خصم تیر میکنن قرار یخ زده ایش بیغم خوست اصلا نیست چیستن خواب زمستانی میکنن نمیکنن خب مکمل زمستان خواب میکنن وقتی که هوا گرم شد پس یخ باز میشن زنده میعنن اما اگر ما تو توی بطور خواب زمستانی بکنیم یک شب یخ بزنیمارا. خواب ما به خواب دائمی می بدل می پس اینال خداوند متعال جل جل یخ زدن از به را نعمت برش ساخته نرمال یخ زدش لکن زنده هست اما ما اوتو را که خوا... چون عقل خداوند داده می نه تو باید از عقلت استفاده کنی وسائل داشته باشی و از خونه خواه نکنی بکار نشی اینال قوات بخشیدن به حیوانات بسیار آجز یاره که ما شما میبینیم رساندن غذا به بسیاری مخلوقات ناتوان دیمور خانه موجود مخلوقات مثل های تولیدی هر مخلوقی میبینی او مثل یک فابریکا وارست و او فابریکا تولیدات بسیار خوبی داره که عطا انسان ها میتونه از او استفاده بکنه قبلا مثلا مذهبتان گفتم که گوزفند شیر تولید میکنه یک مرغ مثلا تخم تولید میکنه کله دلایل است وجود خداوند نعمت ها مطابق سن سال شما وقتی که سنتان خرد بود پاها... پاهایتان هم خرد خرد بود وقتی که کلان شدن پاهایتان هم کلان شد بسیاری وقتا مثلا وقتی که خرد بودی تفلک از نه یک ساله به اقل می باشه اگر هم یک 20 سالگی سالگیت به یک سالگی می داشتی بسیار جگرخون می بودی مثلا یک سالگک می بودی و الباسایت تر کردی کدی <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> اقلت هم اقل جوانیت می بود مادرت می آمد تو کار کردی؟ تو دیگه می شرمیدی ولی اما خداوند متعال جلو جلو از زحمت خودم او که تا وقتی که ضعیف است او رو عقلش هم کم چیز کردن به تفاوت است کل کالای خدا در سر توشک قرار توشک تر میکنه ولی خنده میکنه چرا تو کار کردی؟ نی خوب کردم که کردم سهیست نی؟ الان در طفلی به عقلی نعمت است نه؟ در جوانی عقل نعمت است پس اینال که وقتی که خداوند یک طفل خورده و عقل کم داده مطابق ضرورتش است وقتی که باز جوان شد عقلش بختم میشه مطابق ضرورتش است اینال اگر طفل خورده شما عقل انسان بساله را داشت باز به با مشکل مواجه میشد چرا که مثلا عقل داشت لکن قوت نداشت احیان از پیشش یک اشتباه میشد بون جیار خون میذار کلاگی باش میگه که او به شرمندگی عقل تسلیم استفاده از اشیای عادی برای تقویت انسانی رو پیش هر بار گفتم که مثلا خداوند متعال جل جلو در بسیار چیزای ارزان ضرورت‌های انسان در بین ازو گواشتم مثلا بسیاری وقتها مثلا شلغم میگه سلام میکنه و اینو چورکی 10 پیه سازججات بسیار ارزان ارزان از چورکی 20 روپیه 15 نیست انول ده اینا چیزهای عادی بوده سبزیجات واسه پیش دکتر که میره دکتر میگه والا از گوشت کلا سبزیجاته بخوری خوب از برد این رحمت خداوند است که در چیزی که وجود انسان نیاز داره غذایی که انسان نیاز داره در دا مو که انسان نیاز داره به که انسان نیاز داره ده دا چی کردن ارزانی داده دا او جای بجای کردن چیزهای بسیار ارزان ارزان از حبوبات مثلا نخود لوبیا ترکاری باب یعنی یک انسان فقیر میتونه که از بازار چیزایی که وجودی ضرورت داره عمو رو بخره ازو خاطر بر اساس قدرت خدای عزوجل است که انسان‌های فقیر و ضعیف نیستن که انسان‌های فقیر و غریب زیاد ضعیفمند هستن فقیر که 50 ساله شد روزیش قد است 50 ساله که شد گوشتش قد است برنجش قد است ها بسیاری کسایی رو ببینید رئیس جمهور است وزیر است صد روزه ام اما به بیچاره چیز خورده نمیتونه اما یک فقیر سر که این 70 سال است تو لقمه میزنه تناسب در تراہی چی میگن یعنی مگه وقتی که خداوند وجود انسان را ساخته هر کلش مناسب رشد میتند اگر مثلا یک نفر اعضای بدنش رشد میکرد قلبش به مولات یک سالگیش میبود باز خون وجودش تکمیل نمیشد بلکه هر جای وزن پای انسان که وقتی که خرد ترک وزنش کم است پایش ضعیف است اما وقتی که ارخده کلان شد، میره وجودش پایش هم قوی میشه. برن اگر 120 کلام باشی پایت میتونه که تره حمل بکنه. چیزی هست که خداوند مطال جل جلوهو مطابق ضرورت انسان تمام وجود انسان اما تو نمو میتونه ورشت میتونه. نیازمندی به خالق یا سازنده که اه اه انسان وقتی که عقل خود در کار میپرده همیشه عقلش برشمه یک تو به یک خالقی نیاز داری تا در وقت مشکلات به او رجوع بکنی یه هم دلیل از حادث بودن جهان هستی، دلیل اقلی دیگه هست که علما میگن که خدای وجود داره. وقتی که دنیا امروز کل ساینس بالاخره به نتیجه میرسه که دنیا یک وقت نبود بالاخره بیگ بانگ رو شاکردن که بازی یه انفجار بزرگ است و بازی انفجار بزرگ بالاخره دنیا به با وجود آمد این که دنیا نبود باز پیدا شد. عتمن یک چیزی که نباشه باز پیدا میشه، به چی ضرورت داره؟ به ضرورت داره که ثانهی ضرورت داره که اون رو جور کرده باشه. دگه بسیاری وقتا خود سعادت دنیا و آخرت بر انسان ای را اخر انسان قناعت میدن و خاطر از که من خوشبخت باشم در دنیا و آخرت باید به با وجود خالقه باور داشته باشم که او همه ای ما را خلق کردن خب تاینمی قسمت ما شما خوندیم